فصل پنجم در ژانویه هوا خیلی سرد شد. زمین مزرعه چون سنگ سخت بود و هیچ کاری در مزرعه پیش نمیرفت. جلسات متعددی در طویل تشکیل شد و خوکها سرگرم طرح نقشه کار فصل آینده بودند. پذیرفته شده بود که خوکها که به وضوح از دیگر حیوانات زیرکتر بودند، تمام تصمیمات را درباره خط مشی مزرعه بگیرند. در این تصمیمات به اکثریت آرا تصویب شد. اگر به گومگاه های بین سنوال و ناپل اون نبود این ترتیب مناسب بود، اما این دو هر وقت امکان داشت با هم مخالفت کنند مخالفت میکردند اگر یکی از آن دو پیشنهاد میداد جو به میزان بیشتر کاشته شود دیگری می گفت جو صحرایی بیشتر کاشته شود و اگر یکی می گفت که فلان مزرعه برای کشت کلم پیچ مناسب است دیگری می گفت آن زمین فقط مناسب کشت چغندر است هر کدام پیروانی داشتند و مباحثات سختی در می گیره. در جلسات معمولا سنابال برنده اکثریت آراب بود چون خوب حرف میزد، اما ناپر خارج از جلسات موفقتر بود مخصوصا در گوسفندان نفوذ بسیاری داشت این اواخر گوزفند ها یاد گرفته بودند که با بعبعه چهار پا خوب دو پا بد به جا و بی جا جلسات را به هم زنند مخصوصاً در لحظات حساس نطق سنوال بیشتر چهار پا خوب دو پا بد بلند میشد. سندبال چند شماره قدیمی مجله برزگر و دامدار را به دقت مطالعه کرده بود و پر از طرح و نقشه برای توسعه و عمران مزرعه بود. در اطراف زهکشی و کود شیمیایی آلمان صحبت می کرد و برای صففه در کار نقشه بغرنجی تهیه بود که طبقه آن حیوانات مدفهوع خود را هر روز در یک نقطه مشخص از مزرعه میریختند. ناپون از خود طرحی نداشت و فقط به آرامی می گفت که منتظر فرصت مناسبی است. ولی هیچ که از کشمکش اندو آن دو به شدت اخترافی که سر آسیا بادی پیدا کردند نبود در چراگاه در محلی که از ساختمان مزرعه زیاد دور نبود پشته ای بود که مرتفع در این نقطه قلعه به حساب میامد و سنوبال پس از بررسی کامل اعلام داشت این محل برای برفا کردن یک آسیاب بادی که بتواند مولد برق را بکارن اندازد و به مزرعه نیروی برق بدهد مناسب است با این کار آخرها روشنایی خواهد داشت در زمستان گرم خواهد بود به علاوه بر اره مکانیکی ماشین خرمنکوبی و چغندر خردکنی و دستگاه برقی شیردوشی را هم میتوان به کار انداخت حیوانات راجع به چیزهایی چیزهای هرگز نشنده بودند چون مزرعه قدیمی بود و فقط وسایل ابتدایی داشت و با تعجب گوشت کردند و سنوبال هم اک... و سنوبال هم اکس این ماشینهای غریب را که کار آنها را برایشان میکرد و به آنها فراغت میداد که به بچرند و با خواندن و حرف زدن سطح فکرشان را بالا برند نشانشان داد نشرهای سنوبال برای آسیابادی بادی ظرف چند هفته تکمیل شد. اطلاعات مکانیکی از سه کتاب به اسامی هزار کار مفید مربوط به خانه همه می‌توانند معمار باشند و برق برای مبتدیان که مال آقای جونز بود به دست آمده بود. سنوبال اتاقی را که زمانی جایگاه ماشین های جوجیکشی بود و کف چوبی صاف داشت و برای دخشکشی مناسب بود، محل کار خیش قرار داد. ساعت‌ها کتابایش را به وسیله یک باز نگه تا بین مفاصل پاچایش می‌گرفت و در را به روی خود می بست. به سرعت از سمتی به سمت دیگر میرفت و خطوطی یکی پس از دیگری رسم می کرد و از شعف و شادی روزه کشید. نقشه به تدریج به صورت حدود در همه هندل ماشین و چرخ‌های بیش از نیمی از کف زمین را اشغال کرد. این خطوط برای سایر حیوانات نامفهوم بود ولی آنها را می کرد. همه برای نگاه کردن به نقشه های سنوبال دست کم روزی یک بار به محل کارش می‌آمدند. حتی مرغها و اردکها هم می‌آمدند و خیلی مواظب بودند که مبادا روی علائم گچی پا بگذارند. فقط ناپل اون کنار گرفته بود از همان ابتدا با این کار مخالف بود ولی ناگهان روزی برای بررسی نقشه آمد با تانی دور اتاق راه افتاد تمام جزیات آن را از نزدیک ملاحظه کرد یکی دوبار آن را بوکشید و سبز مدتی متفکرانه از گوشه چشم با آن نظر دوخت و یک مرتبه و بیمقدمه پایش را بلند کرد روی نخشه ها شاشید و بی خارج شد درباره موضوع آسیابادی اهالی قلعه به دو دسته متمایز تقسیم شده بودند سنوبال انکار نمیکرد که ساختن آسیاب کاری دشوار است چون نیاز به استخراج سنگ داشت تا دیوارها ساخته شود بعد باید بادبان تهیه شود و تازه حاجت به دینام و سیم مبدولی بود در باب نحوه تهیه اینها سنوبال حرفی نمیزد اما عقیدهش این بود که کار ظرف یک سال تمام میشود و پس از اتمام آن آنقدر جویی در کار خواهد شد که حیوانات فقط سه روز در هفته کار خواهند کرد از طرف دیگر ناپلون استدلال میکرد که بزرگترین حاجت روز ازدیاد محصول غذایی است و اگر حیوانات وقت را در ساختن آسیا به بادی طلب کنند همه از گرسنگی خواهند مرد حیوانات به دو دسته با دو شعار تقسیم شده بودند. یکی به سنابال و سه روز کار در هفته رای بدهید و دیگری به ناپل آن و غذای وافر رای بدهید. فقط بنجامین جزبه هیچیک از دو دسته نبود نه باور داشت آزوق فراوانتر می شود و قبول داشت آسیاب بادی از مقدار کار خواهد گاست. می گفت چه آسیاب بادی باشد و چه نباشد زندگی شما مثل همیشه یعنی مزخرف خواهد. سوای مسئله آسیابادی دفاع از مزرعه هم موضوع قابل بحثی بود هرچند آدمها در جنگ گافدانی با شکست مواجه بودند ولی کاملا محقق و مسلم بود که آنها بار دیگر و مجهزتر از پیش برای تسخیر مزرعه و سر کار آمدن جونز حمله خواهند کرد مخصوصا به این دلیل که شکست جونز در تمام حل و هوش پیچیده بود و حیوانات مجاور را بیش از پیش جری ساخته بود آدمها ناگزیر از حمله مجدد بودند طبق معمول در این امر نیز سنوبال و ناپلون توافق نظر نداشتند نظر اون این بود که باید سلاحی آتشی داشت و طرز استعمال آن را یاد گرفت و نظر سنوبال این بود که باید کبودرهای بیشتری به خارج ازام کرد تا انقلاب را بین حیوانات سایر مزارع دامن زنند آن استدلالش این که اگر حیوانات قادر به دفاع از خود نباشند مغلوب خواهند شد و این استدلالش آنکه اگر در سایر نقاط انقلاب رخ دهد ده آنها دیگر حاجتی به دفاع از خیش نخواهند داشت حیوانات اول به ناپلون گوشت دادند و بعد به سنوبال ولی نمی توانستند تشخیص دهند که کدام یک از دو نظر صحیح است. در واقع در هر لحظه با آن کسی موافق بودند که در آن لحظه مشغول صحبت بود. بالاخره نشوهای سنوبال تکمیل شد. قرار شد در جلسه روزی روز یک شنبه بعد مسئله ساختن یا نساختن آسیاب بادی برای اتخاذ رأی مطرح شود. وقتی حیوانات در طویل جمع شدن سنابال برخاست و با اینکه گاه به گاه بیاناتش با ببعی گوسفندان قطع میشد دلایل خود را بر له ساختن آسیاب بادی عرضه کرد بعد آن برای جواب به در نهایت آرامش گفت که آسیاب بادی چیز مزخرف است و توصیه کرد که کسی به ساختنش رأی ندهد و با آجله نشست نطقش بیش از 30 طول نکشید و به نظر میآمد که برای تاثیر بیانش تقریبا اهمیتی نیست بعد سنابال برخاست و پس از نهی به گوسفندان که باز می کردند با حرارت از آسیاب بادی سخن گفت تا این وقت حیوانات به دو دسته یک مساوی تقسیم شده بودند اما در یک لحظه فساحت سنابال این تعادل را به هم زد با جملاتی پر آب و تاب تصویری از آن روز که کارهای پست از گردی حیوانات برداشته شد مجسم ساخت کار را از ماشین خرمنگویی و شلغم خردکنی هم جلوتر برده بود و میگفت نیروی برق برق میتواند ماشین خرمن پاک کنی را به کار اندازد زمین را شخم بزند نخاله ها را خرد کند و زمین را صاف و خرمن را درو کند به علاوه در آخرهای حیوانات روشنایی آب سرد و گرم و بخاری برقی خواهد بود وقتی که ندخش به پایان رسید دیگر شک و تردیدی نبود که کفی رأی به کدام طرف متمایل است اما در این لحظه ناپلئون برخواست از گوشه چش نگاهی به سنابار انداخت و صدای مخصوصی کرد که تا آن روز از او شنیده نشده بود در اثر این صدا، او, او یه وحشتناکی از خارج شنیده شد و نه سگ عظیم که قلاده برنج کو برگردنشون بود، خیز خوانان میان انبار پریدند و مستقیم به سنابال حمله بردند. اگر سنوبال به موقع نجوم میده بود، شکمش پاره می‌شد. لحظه‌ای بعد سنابال بیرون در بود و سگا دنبالش حیوانات که از تعجب و وحشت زبانشان بند آمده بود، همگی جلوی در جمع شده بودند و به سنوبال و سکار نگاه میکردند. سنابال لطول طول و به سمتی که به جاده اصلی می میشد در حال دویدن بود فقط یک خوک می توانست آنطور بدود ولی سکاها هم تقریبا پشت پاشنش می میدویدند ناگهان سنوبال لقذی و همه تصور کردند الان است که سکا او را بگیرند ولی بلند شد و با سرعت بیشتری شروع به دویدن کرد سکا داشتن دوباره به او می رسیدند حتی یکی از آنها پوزش را به دم سنوبال رساند ولی او با حرکتی دو مشره ها و با به بردن منتهای تلاش و وقتی که فقط فاصله کمی بینشان بود به سوراخی در تچین خزید و دیگر دیده نشد حیوانات ساکت و وحشت زده به طویل بازگشتند و پس از لحظه ای جست و خیز کنان سررسیدند. ابتدا هیچکس نمیدانست این موجودات از کجا آمدند ولی مسئله به زودی حل شد. سکا همان طله بودند که ناپل اون از مادرهایشان گرفته بود و شخصا پرورش داده بود. با آنکه به رشد کامل نرسیده بودند هیکلی درشت و قیاف درنده چون گرب داشتند. همه نزدیک که ناپلون ایستادند و برایش دوم جنباندند و حیوانان دیدند که آنها همانطور دوم می جنباندند که قبلا سکها برای جنز دومدگان می دادند در حالی که سکها دنبالش بودند روی سکویی که قبلا میجر ایستاده بود ایستاده و نوت کرد اعلام کرد از این تاریخ جلسات صبحهای یک دایر نخواهد شد، چون غیر ضروری و موجب اطلاف وقت است در آتیه تمام مسائل مربوط به کار مزرعه در کمیته مخصوصی متشکر از خوکان و تحت ریاست خودش بررسی خواهد شد جلسات خصوصی خواهد بود و نتیجه تصمیمات بعدا به اطلاع سایرین خواهد رسید اجتماع صبح های یک یکشنبه برای ادای احترام به پرچم و خواندن سرود حیوانات انگلیس و عقصد از دستورات هفتگی ادامه خواهد داشت ولی دیگر مذاکره و بحث صورت نخواهد گرفت حیوانات که هنوز تحت تأثیر ضربه رانده شدن سنوبال بودند از این اختار به کلی خود را باختند چندتایی از آنها اگر می میتوانستند راه صحیحی برای استدلال پیدا کنند اعتراض میکردند حتی باکسر به طرز مبهمی ناراحت بود گوشهایش را خواباند و كاکلش را چندین بار تکان را دو سخت تلاش کرد که به افكارش دهد ولی بالاخره چیزی به ذهنش نرسید از بین خود و خوکها چندتایی به صدا در آمدند. چهار طول که پرواری که در صف جلو بودند به علامت اعتراض با هم بلند شدند و با هم شروع به صحبت کردند، ولی ناگهان سگها که دور ناپل اون بودن غرشی تحتید آمیز کردند، و خوکها را ساکت بر سر جایشن و سپه بعبعه چهار پا خوب دو پا بد بلند شد و در حدود روب ساعت با صدای رسا ادامه پیدا کرد و به هر بحث احتمالی خاتمه داد بعد سکویلر معمولیت یافت که دور بگردد و نظم نوین را به همه گوش زادن سکویلر گفت رفقا من قطع و یقین دارم که همه حیوانات حاضرند از فضاکاری رفیق نافر که حالا مسئولیت بیشتری بر اخت گرفته است قضدانی به عمل آورند رفقا تصور نکنید پیشوا بودن لذت بخش است. درست برعکس کاریست بسیار دقیق و با مسئولیت. هیچ کس به اندازه رفیق ناپل اون به تصاوی حیوانات معتقد نیست او به شخص بسیار خوشحال هم میشد که مقدرات شما را به خودتان واگذار کند اما چه بسا ممکن است که شما به غلط تصمیمی اعتقاذ کنید فرض کنید شما تصمیم بگیرید از خوابهای طلایی سنوبال سنوبالی که ما در حال حاضر می دانیم دست کمی از یک جنایتکار ندارد درباره آسیابادی پیرو بی کنید تکلیف او چه خواهد بود یکی گفت: او در جنگ گاودانی متحورانه جنگید. سکولر گفت: شجاعت کافی نیست. وزیف شناسی و اطاعت هست که اهمیت دارد. و اما در خصوص جنگ گاودانی من یقین دارم زمانی خواهد آمد که متوجه شویم نسبت به نقش سنابال در این جنگ بسیار مبالغه شده است. وفاقا انضباط آهنین شعار روز ماست. یک قدم بی‌رقیه همان است و تسلط دشمن همان، مسلماً رفقا شما طالب بازگشت جونز نیستید. بار دیگر این بحث جوابی نداشت. چون محققا حیوانات طالب بازگشت جونز نبودند. اگر لازمه بحث یک شنبه ها بازگشت جونز بود، بحث باید متوقف میشد. باکسر که تا این وقت فرصت داشت به افکارش نظم دهد به نمایندگی از طرف احساسات امومی گفت: اگر رفیق ماپلونت گفته است، مسلماً صحیح است. و از این تاریخ باکسر شعار همیشه حق ما ناپل اون از را بر شعار خصوصی من بیشتر کار خواهم کرد. اضافه نمود توک سرما دیگر شکسته بود و کشت بهاری شروع شده بود در اتاقی را که سنوبال در آنجا نقشه آسیاب بادی را کشیده بود بسته بودند و چنین فرض می شد که نقشه ها از روی زمین پاک شده است هر یک به صبح ساعت ده حیوانات برای عکس دستورا هفتگی جمع شد جمجمه میجر پیر را که اسکلتی از آن باقی مانده بود، از پای دیوار باغ میوه از غرب درآورده بودند و روی کند درختی در پای میله پرچم کنار تفنگ گذاشته بودند و چنین مقرر شده بود که پس از برافراشتن پرچم حیوانات قبل از دخول به انبار بزرگ با احترام از آن رژه در این ایام تازه نشستن حیوانات چون سابق که دور هم نشستن نبود. آن و سکویلر و خوک دیگری به نام مینیماس که در ساختن آهنگ و سرودن شعر غریزی داشت روی سکو می نشستند و نه سگ نیمداگر آنها تشکیل می دادند و سایر خوک ها پشت سر آنها قرار داشتند بقیه حیوانات مقابل آنها و در وسط انبار می نشستند در سرود هفتگی را با صدایی خشن و سربازوار می خاند و حیوانات پس از یک بار خواندن سرود حیوانات انگلیس متفرقه می شدند در یک شنبه سوم بعد از اخراج سنوبال حیوانات در کمال تعجب شنیدند که ناپلئون اعلام داشت که آسیاب بادی ساخته خواهد شد او برای تغییر عقیدهش دلیلی دلیل ابراز نداشت و صرفا به حیوانات گویست کرد که این امر مستلزم کار فوق العاده است و چه بسا منجر به تقلیل جیره آنان شد و گفت نقشه کار با تمام جزئیات آن ظرف سه هفته گذشته به وسیله کمیته مخصوصی از خوکان تهیه شده و امید است بنای بادی و آبادیهای دیگر سرود دو سال تمام شد. همان روز است سکویلر به حیوانات به طور خصوصی اظهار داشت ناپلئون در حقیقت هیچگاه با آسیاب بادی مخالفت نعبد بلکه برعکس از بدو امر طرفدار آن بود. در که سنوبال لایک کف اتاق جوجه کشیده است کرده بود در واقع از بین نوشتجات ناپلئون به سرقت برده بود و در حقیقت آسیاب بادی از اختراعات شخصی ناپلئون بود است. وقتی یکی از حاضرین سوال کرد پس چطور ناپل آن با آن سرسختی با آن مخالفت می کرد سکویلر نگاهش شیطنتآمیزی کرد و گفت زرنگی ناپل آن بود فقط تظاهر به مخالفت با آسیا بادی کرد تا از شر سنوبال که عنصر بسیار خطرناکی بود رهایی پیدا کند و حالا که سنوبال از سر راه برداشته شده نقشه بدون دخالت وی می تواند عملی شود و سکویلر اضافه کرد این همون چیزی است که به آن تاکتیک میگویند در حالی که می چخید و دومش را می‌جممان چندین بار تکرار کرد تاکتیک رفقا تاکتیک حیوانات درست معنی کلمه را نفهمیدند اما سکویلر چنان قرص و محکم حرف زد و سکا که تصادفاً با وی بودند چنان غر را آمیزی کردند که همگی توضیحات وی را بدون چون چرا پذیرفتند